جینی که تنها ماند بیان که بلند شود نگاهی به اطراف کرد تا جای مناسبی برای انداختن یا پنهان کردن ساندویچ پیدا کند. صدای پای کسی را شنید که از توی راه را آمد ساندویچ را توی جیب ماتوش گذاشت. جوانی سی و چند ساله با قد متوسط پا به اتاق گذاشت. چهرش، موهای کوتاهش، طرح لباسش، پارچهکراواتش هیچ کدام نشانی از او نمیدادند. میشد گفت که نویسنده یک مجله خبری است. یا به دنبال نویسنده شدن است میشد گفت بازیگر نمایشی بوده که تازه در فیلادلفیا تمام شده یا عضو کانون واکلاست با خوش روی به جینی گفت سلام سلام پرسید فرانکلینو دیدین داره ریش می تراشه گفت بهتون بگم منتظرش بمونین همین علیت جوان به ساعت ما چش نگاهی اندخت و گفت ریش می تراشه؟ خدایا سپس روی یک صندلی حریر گلدار نشست پایش را رو روی پایش انداخت و صورتش را توی دستهایش گرفت و مثل کسی که بدنش کوفته شده باشد یا چشمش آسیب دیده باشد با نوک های بازش چشمهای بستش را مالید. را از صورتش کنار برد و گفت: امروز ناکترین روز عمر من بود. صدایش گویی از توی چاه آمد. ظاهران آنقدر خسته بود که نفسش بالا آمد. جینی به او نگاه کرد و گفت: چی شده؟ چی بگم؟ داستانش سر درازی داره من خوش ندارم سر کسانیو که نمیشناسم درد بیارم با گیجی و کچ به پنجره چشم دوخت و گفت دیگه تو همه عمرم به قول و قرار هیچ آدمی زادی اعتماد نمیکنم. هرگز هر چی میخواد بگه جینی باز گفت چی شده؟ خدایا دارم از دست این آدمی که ماه توی آپارتمان من جا خوش کرده کلافه میشم اصلا دلم نمیخواد اسمشو بیارم امان از دست این نویسنده کلمه آخر را با رضامندی از یادآوری یکی از آدم‌های شریر آثار همینگوی بر زبان آورد. کار کرده؟" مرد جوان گفت. "راستش همه چیزا که نمیشه گفت." و بی به سیگاردان شفاف روی میز از جبهه سیگار خودش سیگاری برداشت و با فندکش روشن کرد. دستهای بزرگی داشت. ظاهرشان نشان میداد که نکاریند. نه قوی و نه حساس. اما در حرکاتشان نوعی زیبایی وحشی و منحصر به فرد به چشم خورد تصمیم گرفتم دیگه حتی فکرشو نکنم اما دیگه دارم از کوره در میرم امان از دست این پسرک وحشتناک آلتونایی پنسیلوانیایی یا نمیدونم کجایی دائم مثل سگ گشنگی میخوره اون وقت من چه آدم مهربون و خوبی هستم مثل اون سامره نیک که به آپارتمانم راهش دادم. تو این آپارتمان فسخوی که جای خودم هم نمیشه. به همه دوستانم معرفیش میکنم. میذارم نوشته های وحشتناک، تحسیگاراش تررب چه و هزار کوفت و زهرم و همه جای آپارتمان پخش کنه. به تک تک تهیه کننده های نیویورک معرفیش میکنم. پیرهن های جمع میکنم میبرم خوششیوی و میارم. از همه اینا گذشته حرفش را برید و سپس گفت. اون وقت در برابر این همه مهربونی و خوبی من ساعت پنج یا شش صبح راه میفته از این خونه میره بیرون بدون اینکه یادداشتی چیزی بزره هر چیزی را هم که دستایی کسی بارش بهش برسه برمیدار و با خودش میبره مکس کرد پکی به سیگار زد و دود را به صورت خطی باریک و ممتد از دهنش بیرون فرستاد و گفت نمیخوام صدام در بیاد لام تا کام حرفی نمیزنم. جینی را برانداز کرد و از روی صندلی که بلند میشد گفت مانتوی قشنگی دارین نزدیک رفت لبه مانتوی جینی را گرفت و گفت معرکه است اولین پشم شاطر خوبی که از زمان جنگ تا حالا دیدم از کجا خریدین مامانم از نساوا برام آورده جوان متفکران سرتکان داد و عقب عقب به سوی سندلیش رفت و گفت اینجا یکی از چند جایی که پشم شتر خوب گیر میاد نشست و گفت خیلی اونجا موند جینی گفت چی مامان تو خیلی اونجا موند برای میپرسم که مامان خود من تو دسام و چند روز توی ژانویه اون طرفا بود خودم هم معمولا باهاش میرم اما امسال انقدر گرفتار بودم که فرصت نکردم راه بیفتم برم جینی گفت تو فوریه اونجا بود چه عالی کجاش رفته بود خبر دارین خونه خالم بود جوان سر تکان داد و گفت اسم شما چیه شما دوست خواهر فرانکلین هستین گمونم جینی که فقط به سوال دومش جواب میداد گفت هم کلاسی هستیم شما همون مکسین معروف نیستین که سلنا حرفشو میزنه ها جینی گفت خیر جوان ناگهان با کف دست شروع کرد به تکاندن پاچه های شلوارش و گفت موهای سگ سر تا ما پر کرده مامانم آخر هفته بلنش و رفنی و یورک و سگشو تو آپارتمان منزل کرد حیوون خیلی شیری نیه اما عادتهای زشتی داره شما سگ دارین؟ نه راستشو بخواین فکر میکنم نگه داشتن این حیونا توی شهر کار ظالمانه از تکاندن پاچه های شلوار دست گشید پشت داد و دوباره به ساعتش نگاه کرد هیچ وقت یاد ندارم به موقع حاضر شده باشه قراره بریم فیلم دلبر رو ببینیم. این فیلمیه که آدم باید سر وقت تو سالان باشه یعنی اگر دیر برسید دیگه لطفی نداره این فیلمو دیدین؟ نه نصف عمرتون تو است من هشت بار دیدم واقعا فیلم محشریه ماهاست جون توی جون فرانکلین میکنم ببرمش نامیدان سرتکان داد و گفت چه سلیقه ای داره تو دوران جنگ ما دوتایی توی خراب شده کار میکردیم اون وقت این پسر من میکشید می, می تماشای فیلم هایی که هیچ وقت خدا اتفاق نمی فیلم‌های فیلم های گنگستری، وسترن، موزیکال. جینی پرسید. شما هم تو کارخونه هواپیماسازی کار می‌کردین؟ آره دیگه. چندین سال آزگار. خواهش می اسمش اسمشو نبرین. شما هم بیماری قلبی دارین؟ خدا نکنه لبتون رو گاز بگیرین. دوبار به دسته صندلی زد. بنیهی که من دارم.